مسنویه معنویه مولوی برنامه بیستو امامی قصه زنده شدن استخوان ها بدعای عیسی علیه السلام خواند عیسی نام حق بر استخوان از برای التماس آن جوان حکم ازدان از پای از آن خام صورت آن استخوان را زنده کرد. از میان برج است، یک شیر سیاه، پنجه ای زد کرد نقشش را تباه. کلش برکند، مغزش ریخت زود، مغز جوزی کندرو، مغزی نبود. گر ورا مغز بوده، اشکستنش خود نبودی نقص، الا بر تنش. گفت عیسی چون شتابش کوفتی گفت زان رو که تو زو آشوفتی، گفت عیسی چون نخوردی خون مرد، گفت در قسمت نبودم، رزق خورد. ای بسا کس همچون شیر ژیان سید خود ناخورده رفته از جهان قسمتش کاهی نو هرسش چکوه وجه نیو کرده تحصیل وجود ای میسر کرده بر ما در جهان سخرا و بیگار ما را وارهان تو ما بنموده به ما وان بوده است آنچنان بن ما به ما آن را که هست گفت آن شیر ای مسیحا این شکار بود خالص از برای اعتبار گرما را روزی بودی در جهان خود چیکارستی مرا با مردگان این سزای آنکه یابد آب صاف همچو خر در جو بمیزد از گذاف گر بداند قیمت آن جوی خر او به جای پا نهد در جوی سر او بیابد آنچنان پیغامبری میر آبی زندگانی پروره چون نمیرد پیش او از امر ای امیر آب، ما را زنده کن هین سگ نفس تو را زنده مخوا کو ادوی جان توست از دیرگاه خاک بر سر استخان راکان مانع این سگ بود از سید جان سگ نهی بر استخوان چون آشقی دیوچوار از چه برخون آشقی؟ آم چه چشمستان که بیناییش نیست؟ زمدهانها جز که رسواییش نیست؟ سهو باشد زنها را گاه گاه این چه زن نستین که کور آمد زرا دیده بر دیگران نوحه گری. مدت بنشین و بر خود می گری. زبر گریان شاخ سبز و تر شود، زان که شم از گریه روشنتر شود. هر کجا نوحه کنند، آنجا نشین، زان که تو اندر اندرهنین، زن که ایشان در فراق فانی اند غافل از لعل بقای کانی هند، زن که بردل نقش تقلید است بند، رو به آب چشم بندش را برند، زن که تقلید آفت هر است که بود تقلید اگر کوه قویست. گر زریر لم ترست و تیز خشم گوشت پارش دون چورا نیست چشم گر سخن گوید زمو باریک در، آن سرش را زان سخن نبود خبر مستی دارد ز گفت خود ولیک از بر وی تا به می راه است نه همچو جوی است و نه او آبی خورد، آب از او بر آب خاران بگذرد. آب در جو زان نمیگیرد قرار، زان که جو نیست تشنه و آب خار. همچو نای ناله زاری کند، لیک بیگار خریداری کند. نوهگر باشد مقلد در حدیث جز تمع نبود مراد آن خبیص اگر گوید حدیث سوزناک لیک کو سوز دلو دامان چاک از محقق تا مقلد فرق هاست کین چو داوود است و آن دیگر صداست من منبع گفتار این سوزی بود وان مقلد کهنه آموزی بود هین مشو غره بدان گفته هزین بار برگاو است و برگردون هنین هم مقلد نیست محروم از سواب نوهگر را مزد باشد در حساب کافر و مؤمن خدا گویند لیک در میان هر دو فرقی هست نیک آن گدا گوید خدا از بحر نان متقی گوید خدا از عین جان گر بدانستی گدا از گفت خیش پیش چشم او نکم مندی نبیش سالها گوید خدا آن خواه، همچو خر مصحف کشد از بحر کاه، گر به دل در تافتی گفت لبش، زر رزر گشته بودی قالبش. نام دیو رهبرت در ساهری، تو به نام حق پشیزی میبری. خریدن روستایی در تاریکی شیر را به گمان آنکه گاوه است روستایی گاو در آخر ببست شیر گاوش خورد و بر جایش نشست روستایی شد در آخر سوی گاو گاو را می جست شب آن کنج کاو دست می مالید بر اعضای شیر پشت و پهلو گاه بالا گاه زیر گفت شیر ار روشنی افزون شده ای. زهرش بدریدی و دل خون شده ای. چنین گستاخ زان می خاردم که در این شب گاو میپنداردم. حق همه گوید که ای مغرور کور نه نامم پارا پارا گشت تور که لو انزلنا کتابن للجبل لنصده سم من قطه سم مرتحل. از منر کوه اهد واقف بودی، پاره گشتی و دلش پرخون شدی. از پدر و از مادرین این ای، لاجرم غافل در این پیچیده ای. گر تو بی تقلید از این واقف شوی، بینشان از لطف چون حاطف شوی. بشنوین قصه پی تهدید را تا بدانی آفت تقلید را فروختن سفیان بهیمه مسافر را جهت سما یه در خانقه از ره رسید مرکب خود برد و در آخر کشید آبکش داد و علف از دست خیش نه چنان صوفی که ما گفتیم پیش احتیاطش کرد از و خباد چون قضا آید چه سود است احتیاط صوفیان در جوع بودند و فقیر که فقرن ان انیعی کفرن یبیر ای توانگر که تو سیری هین مخند بر کجیه آن فقیر دردمند مند. از سر تقصیر آن صوفی رمه خرفروشی در گرفتند آن همه که ضرورت هست مرداری مباه بس فسادی از ضرورت شد صلاح هم آن دم آن خرک بفروختند، لود آوردند و شم افروختند، ولوله افتادن در خانقه که امشبان لوت و سما است و شره چند از این صبر و از این سروزه چند چند از این زنبیل و این دریوزه چند ما هم از خلقیم و جان داریم ما دولت امشب مهمان داریم ما تخم باطل را از آن می کاشتند کانکه، آن جان نیست، جان پنداشتند. وان مسافر نیز از راه دراز خسته بود و دید آن اقبال و ناز. صوفیانش یک به یک بنواختند. نرد های خوش می باختند. گفت چون میدید میلانشان بوی گر تراب امشب نخواهم کرد کی؟ لود خوردند و سما آغاز کرد خانقه تا سقف شد پر دود و گرد دود مطبخ گرد آن پاکفتن زشتیاق و وجد جانا شوفتن گاه دستفشان قدم می کوفتند گه به سجده صفه را می روفتند دیر یا بدصوفی آز از روزگار زن سبب صوفی بود بسیار خار جز مگر آن صوفی که از نور حق سیر خوردو فارغ است از ننگ دق از هزاران اندکی زین صوفی هند. باقیان در دولت او میزی هند. چون سما آمد ز اول تا کران متر باغازید یک ذرب گران رفت و خربرفت آغاز کرد زین حراره جمله را انباز کرد زین حراره پای کوبان تا سهر کف زنان خر رفت و خر رفت ای پسر از راه تقلید آن صوفی همین خربرفت آغاز کرد در هنین چون گذشتآن نوش و جوش و آن سما روز گشت و جمله گفتند الودا خانقه خالی شد و صوفی بماند گرد از رختان آن مسافر می فشاند رخت از حجره برون آورد او تا بخر خر بر بربنددان همراه جو تا رسد در همرهان او می شتافت رفت در آخر خر خود را نیافت. گفت آن خادم به آبش برده است. زان که خر دوش آب گمتر خورده است. خادم آمد گفت صوفی خر کجاست؟ گفت خادم ریش بین جنگی بخواست. گفت من خر را به تو بسپردم، من تو را برخر مؤکل کردم، از تو خواهم آن چه من دادم به تو، بازده آن چه فرستادم به تو. بحث با توجیه کن، حجت میار، آنچه من بسپردمد واپس سپار. گفت پیغنبر که دستت هرچه برد، بایدش در عاقبت واپس سپرد. ورنه ای از سرکشی رازی بدین نکمن و تو خانه قاضی دین گفت من مغلوب بودم سوفیان حمله آوردند و بودم بیم جان تو جگربند میان گربگان اندر اندازی و جوی زن نشان در میان صد گرسنه گردای پیش صد سک گربه‌ی ای گفت گیرم تو ظلمن بستودند قاصد خون من مسکین شدند تو نیایی و نگویی مرمرا که خرت را میبرندای بینوا، تا خر از هر که بود من واخرم ورنه توذی کنندشان زرم صد تدارک بود چون حاضر بودند این زمان هر یک به اقلی می شدند. من کرا گیرم، کرا قاضی برم، این قضا خود از تو آمد بر سرم. چون نیایی و نگویی ای غریب، پیش آمدین چون این ظلم محیب. گفت والله آمدم من بارها، تا تو را واقف کنم زین کارها، تو همه گفتی که خرفت پسر از همه گویندگان با زوقتر باز میگشتم که او خود واقف است زین قضا رازی است مرد عارف است گفت آن را جملة می میگفتند خوش مرمرا هم زوق آمد گفتنش مرمرا تقلیدشان برباد داد ای دوست لعنت بر آن تقلید باد خواست تقلید چنین به حاصلان خشم ابراهیم با برآفلان عکس ذوق آن جماعت می زدی وین دلم زان عکس ذوقی میشدی عکس چندان باید از یاران خوش که شوی از بر به به عکس آبکش عکس که زد تو آن تقلید دان، چون پیا پی شد شود تحقیق آن. تا نشد تحقیق از یاران مبر، از صدف مکسل، نگشتان قطره در. صاف خواهی چشم و اقل و سمع را، بردران تو پرده های را. زن کان تقلید صوفی از تمه، عقل او بر است از نور و لمع تم ایلوت و تم ای آن زوق و سما، ما آمد عقل او را زد تلا. گر تمه در آینه برخواستی، در نفاق آن آینه چون ماستی. گر ترازو را تمه بودی به مال، راست کی گفتی ترازو وصف حال هر نبی گفت با قوم از صفا من نخواهم مزد پیغام از شما من دلیلم حق شما را مشتری داد حق دلالیم هر دو سری. چیست مزد کار من دیداریار گرچه خود بوبکر بخشد چل هزار چل هزار او نباشد مزدمن که بود شبه شبه در عدن یک حکایت گویمد بشنو به هوش تا بدانی که تمع شد بند گوش هر را باشد تمع الکن شود با تمع کی چشم و دل روشن شود پیش چشم او خیال جاه و زر همچنان باشد که موین در بسر جز مگر مستی که از حق پر بود گرچه بدهی گنجها او هر بود هر که از دیدار برخوردار شد این جهان در چشم او مردار شد لیک آن صوفی زمستی دور بود لاجرم در هرس او شبگور بود سطح هکایت بشنود متحوش هرس در نیایت نقطه در گوش هرس تعریف کردن منادیان قاضی مفلس را گرد شهر بود شخص مفلس بی خانمان مانده در زندان و بند به امان لقمه زندانیان خوردی گذاف بر دل خلق از تمع چون کوه قاف زهره نکس را که لقمه نان خورد زان که آن لقمه ربا کاوش برد هر که دور از دعوت رحمان بود او گداچشم است اگر سلطان بود مرم رووت را نهاده زیر پا گشته زندان دوزخ زان نان رو با بر امید راحت، زان طرف هم پیشد آید آفته هیچ کنجه دد و بیدام نیست جز به خلوت حق آرام نیست کنج زندان جهان ناگزیر نیست بی پامزد و بی دقل حسیر و لح ار سوراخ موش در روی مبتلاه گربچنگال شوی آدمی را فربهی هست از خیال گر خیالاتش بود صاحب جمال بر خیالاتش نماید ناخوشی می گدازد همچموم از آتشی در میان ما و کژدم گر با خیالات خوشان دارد خدا ما و کژدم بر تورا مونس بوود کان خیالت کیمیای مس بوود صبر شیرین از خیال خوش شده است کان خیالات فرج پیش آمده است آن فرج آید ز ایمان در زمیر ضعف ایمان ناامیدی و ظهیر صبر از ایمان بیابد سركله حیسو لا صبر فلا ایمان الله گفت پیغامبر خداش ایمان نداد هر را صبر نباشد در نهاد آن یکی در چشم تو باشد چمار هموی اندر چشم آن دیگر نگار زان که در چشمت خیال کفر اوست وان خیال مؤمنی در چشم دوست کندرین یک شخص هر دو فعل هست گاه ماهی باشد او و گاه شست نیم او مؤمن بود نیمش گبر نیم او هرساوری نیمش سابر گفت یزدانت فمنکم مؤمنون باز منکم کافرون گبر کهون همچوگاوه نیمه چپش سیاه نیمه دیگر سپید ماه هر که این نیمه ببیند، رد کند. هر که آن نیمه ببیند، کد کند. یوسف اندر چشم اخوان چون سطور. هموی اندر چشم یعقوبی چهور. از خیال بد مرو زشت دید. چشم فرع و چشم اصلی ناپدید چشم ظاهر سایه آن چشم دان، هرچه آن بیند بگردد این بدان تو مکانی اصل تو در لا مکان این دکان بربند و بکشا آن دکان ششجهت مگریز زیرا در جهاد ششدره است و ششدره مات است مات